گزارم که با ما همراه هستید. خبرهای دانمارک در هفته که گذشت رو به سمع شما عزیزان میرسونم. با ما لطفا همراه باشید. دادگاه متهم به طراحی و تدارک بمب‌گذاری در دانمارک آغاز شد. دادگاه متهم به بمب‌گذاری ماه نوامبر در کپنهاگ از امروز در آلمان آغاز می شود. دادستانی روز پنجشنبه 24 نوامبر اعلام کرد که این پناهجوی 20 ساله قصد داشت به دانمارک سفر کند نام متهم اعلام نشده هنوز روشن نیست که او چه مدت در دانمارک ساکن بوده و یا پناهندگی دریافت کرده باشد به این گزارشها متهم پس از دستگیر شدن که نتوانست از مرز عبور کند و بارد دانمارک شود توسط پلیس آلمان دستگیر شده دومین یک شنبه ماه می در دانمارک مصادف با روز مهمی بود روز موجودی عزیز و مهربان به نام مادر اگرچه هر روز یک روز مادر است اما شاید درگیری‌های مختلف زندگی بسیاری را از توجه به مادران باز می‌دارد به همین واسطه است که در کشورهای مختلف جهان روزی به نام روز مادر و همچین روز پدر نامگذاری کردند تا حداقل یک روز از سال از مقاب این میوه‌های کمیاب زندگی تجدیدی ویژه به عمل آید دومین یک شنبه ماه می از یک سال یکصد ساله سال تا کنون در دانمارک روز مادر بوده روزی که همگان از مادران خود و یا هر انسان دیگری که با او را, او را به عنوان یک مادر ستایش میکنن تقدیر به عمل می آید. دومین یک شنبه ماه می به همین مناسبت یکی از پرکارترین روزها برای گرفروشی ها در دانمارک بود ما همین روز را به همه مادران مخصوصا خانم ویروزه عزیز تبریک میگوینم و آرزوی سلامتی برای همه مادران داریم. اعتراف دنس بانک و نوردیا به شکست در جلوگیری از پولشویی. بانکهای نوردیا و دنس بانک بزرگترین بانکهای دانمارک نسبت به عدم موفقیت خود در ممانعت از پولشویی مجرمانه اعتراف کردند. مشاور حقوقی دنس بانک در یک جلسه پارلمان اعتراف کرد که شعبه استونی این بانک از صلاحیت کافی برای ممانعت از پولشویی توسط مجرمان برخوردار نبوده است. پول هایی شده از قاچاق و جرائم دیگر در شعب این دو بانک در مالدوی استونی و لیتونی توسط واسطه ها سیستم بانکی می شده است. دریافت کنندگان این پولها معمولاً معمولا شرکت هایی در بهشت های مالیاتی مثل جزایر سیشل و پاناما بودند که در بانک های دانمارکی حساب داشتند. مشکلات جدید در اداره مالیات دانمارک علاوه بر مشکلات تقلب و فرار از پرداخت مالیات، یک مشکل جدید در اداره مالیات بروز نموده است. گزارش شده که اداره مالیات ناتوانسته میلیاردها کرون بدهی افراد، شرکت‌ها و محکومین را جمع‌آوری نماید. در این گزارش آمده که بدیهای مووقه مالیاتی جرائم پارکینگ سرعت رانندگی و آبلمان تلویزیون بالغ بر 80 میلیارد کرون برابر با 11 میلیارد دلار می گردد که ممکن است اداره مالیات نتواند آنها را وصول کند در یک مورد از یک ممیز 7 میلیارد کرون جرایم ارسالی توسط پلیس و دادگاه ها به اداره مالیات برای وصول تنها 13 میلیون کرون آن شده است به اعتقاد یک وکیل اکثر شرکت ها اعلام ورش می‌کنند تا از پرداخت جرائم سنگین پرهیز نمایند. دوربین های مداربسته بیشتر برای نظارت بهتر در دانماک یک اکثریت در میان رای دهندگان دانماک خواستار نصب دوربین‌های مداربسته بیشتری در اماکن عمومی شدند تا از آن طریق نظارت بیشتری بر این اماکن اعمال کردند. در یک نظرسنجی آمده که 60 درصد دهندگان از این موضوع حمایت می کنند. در حالی که تنها 15 درصد با آن مخالفند. در حال حاضر ده حدود 500 هزار دوربین مداربسته در سرتاسر سر دانمارک کار گذاشته شده است. به اعتقاد طرفداران نظارت بیشتر این دوربین ها به پلیس در کشف جرائم وحشتناک و در نتیجه به امنیت جامعه کمک شایانی می کند. توافق قطب شمال، راه را برای همکاری علمی هموار میسازد. دانمارک از جانب گرینلند و هفت کشور دیگر شامل آمریکا، کانادا، روسیه، سوئد نروژ، ایسلند و فنلند سندی الزام آور را در شورای قطب شمال در آلاسکا امضا کردند که میتواند زمینی تقویت همکاری علمی در منطقه را فراهم نماید. این توافق میتواند برای رونق اقتصادی و بهبود شرایط بومیان منطقه و محیط زیست موثر و مفید واقع گردید. و علارغم شک و تردید دونالد ترامپ درباره توافق آب و هوای پاریس، تلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در اقدامی تعجب برانگیز این سند را امضا کرد. سامی لوسن وزیر امور خارجه دانمارک گفت هفت کشور دیگر آقای ترسون را تحت فشار قرار دادند تا اینکه وی در نهایت راضی به این امر شد. تقویت سیستم دفاعی آی‌تی حزب لیبرال, دان... لیبرال دانمارک اعلام کرد که قبل از حمله سایبری روز جمعه به 99 کشور از جمله دانمارک این کشور در حال تقویت سیستم‌های دفاعی آی‌تی خود بوده است. اوایل امسال در یک گزارش آمده بود که 158 مورد از 428 سیستم آیتی بخش عمومی در وضعیت مناسبی قرار ندارد به دنبال این هشدار یکی از وزرای دولت صحبت از برطرف برطرف ساختن این کاسی به میان آورده بود اما مشخص نیست قبل از حمله اخیر اقدامی در این راستا صورت گرفته باشد پیشرفت اقتصادی مستمر اما کونت در دانمارک کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش پیش بینی بهار خود اعلام کرد که رشد اقتصادی دانمارک اندکی بالاتر از رقم پیش بینی شده قبلی خواهد بود. در زمستان امسال نرخ رشد یک مایل پنج درصد پیش بینی شده بود، اما در آخرین گزارش این رقم یک و هفت درصد ارتقا داده شده که نسبت به رشد یک و سه درصدی سال 2015 نشان می از بهبود وضعیت اقتصادی در دانمارک. نرخ تورم نیز در سالهای اخیر ثابت بوده، اما طبق پیش های کمیسیون تا دیروزای نرخ در سال جالی و سال 2018 به ترتیب 1.4 درصد و 1.7 درصد خواهد بود. درخواست برای خصوصی سازی بیشتر در دانمارک دولت اخیراً از دانس بانک خواست درباره فروش کانال تلویزیونی تیویتو تحقیق به ملاین. به دنبال این درخواست، اندیشکده راستگرای، دانمارک از دولت خاص تمامی شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید رئیس این اندیشکده گفت دونگ انرژی، فرودگاه دونگ انرژی، و کمیسیون بازی های به با عنوان بزرگترین شرکت های دولتی قابل فروش می باشد. تلاش حزب این حال بست برای قانونی کردن سکس بین خواهر و برادر. در حال حاضر در دانمارک سکس کردن بین خواهر و برادر به خاطر خطر به وجود آمدن کودک به مشکلات ژنتیکی غیر قانونی می باشد و تخلفان و متخلفین ممکن است تا دو سال به زندان محکوشااند اما بعد از افشای داستانی بین یک خواهر و برادر از شهر آوس که از عشق پنهانی خود پرده برداشتند و همکنونی صاحب یک نوزاد پنج ماه هستند این حزب در تلاش است که تا این قانون را تغییر دهد و سیکس بین خواهر و برادر رو قانونی کند تندرستیتون پایدار عزیزم